ستانقولول خودخواه یکی بود یکی نبود، باغ زیبایی بود که بچه ها عادت داشتن هر روز وقتی از مدرسه برمیگردند توی اون بازی کنن. بچه ها اصلا فکرش رو هم نمیکردند که اون باغ صاحب داشته باشه. اون هم چنین صاحبی. یه روزی یه قول لندههور با قدمهایی بلند از راه رسید و، با صدای نتراشیده و نخراشیدهش گفت هیچ معلوم هست شما بچه ها اینجا چی کار میکنید؟ اینجا باغ منه. یالا یالا برید دور شید. هفت سال پیش قول رفته بود به دوستش کورنیش سری بزنه. حالا هم برگشته بود و میخواست باغش فقط و فقط برای خودش باشه. بچه ها فوری دویدن و از باغ بیرون رفتن. اما قول هنوز راضی نبود. زود دست بکار شد و نرده بلندی دور تا دور باغش کشید. اعلامیه جلوی در اون چسبون که روش نوشته بود هر کسی که بیر وارد بشه مجازات میشه. راستی رستی که قول خودخواهی بود. دیگه بچه های بیچاره جایی برای بازی کردن نداشتن. اما قول وقت نداشت به این چیزها فکر کنه. مدتی بود که تمام فکر و ذکرش این شده بود که چرا شکوفه ها از شاخه ها ریختن، چرا گل ها پژمرده شدن و چرا به نظر میاد که پرنده ها از باغش فرار کردند؟ روزی همینطوری که داشت از پنجره به بیرون نگاه میکرد و بارش دونه های درشت برف رو تماشا میکرد، با خودش فکر کرد اینبرف نشون میده که بهار داره از راه میرسه مه درختارو رو با رنگ نقرهٔ زیبایی رنگامیزی کرده بود پتویی از یخ زمین رو پوشونده بود و گیاها و علفها به سیخهای سفت و بیجون تبدیل شده بودند هر روز باد شمال میون باغ زوزه میکشید خودش رو به بام خونه قول میکوبید و توی دودکش بخاری سرک میکشید روزی تگرک هم به دیدن باغ اومد و اونقدر به شیشه های پنجری خونه قول کوبید که قول از عصبانیت نعری بلندی کشید و دستاش رو روی گوشاش گذاشت تا اون صدای گوش خراش رو نشنبه تا اینکه یه روز یک شنبه قول از شنیدن صدایی که دیگه تقریبا اون رو از یاد برده بود از خواب بیدار شد. صدای پرنده ای که توی باغش جیک جیک و جست و خیز می کرد. بعد بوی خوشی توی دماغ قول پیچید. بوی عطر گلها بالاخره بهار اومده بود. از خوشحالی گل از گل قول شکفت. لباسهاش رو پوشید و دوید و رفت توی باغ. باورش نمی شد. آب شده بودن. دیگه از مه و یخ خبری نبود. آسمون آبی بود و نسیمی گرم و آروم میوزی. بچه ها همه جای باغ دیده می شدن. اونها از سوراخی که زیر نردی باغ درست شده بود خودشون رو به باغ رسونده بودند. روی درختایی که شاخه هاشون زیر بار میوه های رسیده خم شده بود. نشسته بودن و میون علف های سبز زمردی و دیرنگی که جا به جای اون گلهای مروارید و آلاله بود میدویدن و صدای خنده شادیشون هوا رو پر کرده بود فقط توی گوشه باغ هنوز زمستون بود پسر جلویی که وسط لکه برف ایستاده بود به شاخه های لخت یک درخت شاه بلوت نگاه میکرد گریه و زاری رو انداخته بود چون دستش به شاخه نمی رسید. قلب قول از تماشای این صحنه به درد اومده بود. زیر لب گفت. حالا فهمیدم چی باعث میشه باغم زیبا و سرسبز بشه. آره به خاطر بچه هاست. آخ که چقدر خودخواه بودم. قول به طرف پسر بچهی که گریه می کرد رفت. به آرومی بغلش کرد. روی یکی از شاخه های یخ زده درخت شاه بلوط گذاشتش. فوری برگ های سبز و پهنه روی همه شاخه ها پدیدار شد. برفای پای درخت ناپدید شدن. بهار به سراغ اون گوشه باغ هم اومد و اونجا رو مثل همه جا سرسبز و زیبا کرد. با دیدن این صحنه لبخند زیبایی روی صورت پسرک نقش بست. دستاش رو دراز کرد و دور گردن قول انداخت و بغلش کرد. قول خندهی کرد و گفت حالا این باغ دیگه مال شماست بچه ها. بچه ها. با خوشحالی جست و خیز کردند قول هم تبرش رو برداشت و نرده دور باغ رو خراب کرد. بعد تمام روز کنار بچه ها بازی کرد. اون روز فهمید توی تموم عمرش حتی یه روزم نبوده که انقدر بهش خوش گذشته باشه. فقط یه چیز بود که خوشحالی جدید قور رو خراب میکرد. توی باغ رو نگاه کرد و دنبال پسر کوچولوی گشت که کمکش کرده بود تا از درخت بالا بره. اما هیچ اونو ندید. قول اون پسر کوچولو رو خیلی بیشتر از بقیه بچه ها دوست داشت. چون اونو بوسیده بود. برای همین دلش میخواست دوباره اونو ببینه. سالها گذشت و بچه ها هر روز برای بازی به اون باغ زیبا می توی این سالها قول پیر و زوار در رفته شد. کم کم کارش به جایی رسید که دیگه نمیتونست خودش رو از دست بچه ها خلاص کنه. برای همین میذاش بچه ها از سر و کلش بالا برن هر کاری که دلشو میخواد بکنن. قول توی صندلی دستهدار مخصوصش مینشست و از تماشای بازی و جست و خیز بچه ها لذت میبرد. روزی به خودش گفت. درسته که باغم خیلی خوشگل شده. اما بچه ها از همه چیز زیباترند. بعضی وقتا سر گنده و خاکستری قول به جلو خم میشد و روی سییننش میافتاد و خور و پفت می کرد. بچه ها هم وقتی میدیدن قول خوابش برده بی سر و صدا این ور اونور میرفند تا مزاحمش نشن تا اینکه یه روز بعد از ظهر قول بعد از چرتی کوتاه از خواب بیدار شد و چشمش به یه چیز حیرت انگیز افتاد. در دورترین گوشه باغ یه درخت طلایی دیده می شد. که تا اون موقع خبری ازش نبود قلب قول از خوشحالی فرو ریخت چون دید زیر درخت همون پسر کوچولوی دوست داشتنیش ایستاده قول از روی صندلی دستهدارش پرید و لنگ لنگان به اون طرف رفت اما وقتی به نزدیکی پسر کوچولو رسید چهرش از خشم کبود شد کف دستا و روی زانوهای پسرک زخم شده بود. با نگرانی پرسید: کی به خودش جرأت داده این بلا رو سرت بیاره؟ زود باش بگو تا پدرش رو در بیارن. پسرک لبخندی زد. دست گنده قور رو چسبید و گفت: اینها های محبته. یه روز تو به من اجازه دادی که توی باغت بازی کنم. امروز هم من اومدم که تو رو ببرم به باغ خودم حالا بهشت باغ منه بعد از ظهر اون روز که بچهها دوون دوون وارد باغ شدند تا مثل هر روز بازی کنند جسد بیجون غول رو دیدند که زیر اون درخت زیبا افتاده و لاحافی از شکوفههای سفید مثل برف روش رو پوشونده آیا تا به حال آرزو کردین که به سرزمین های سهرامی زفر کنیم؟ جایی که پری ها و کتوله زندگی می کانال هزار افسان همونیه که دنبالشیه ها که دنبال. جایی که داستان های افزانهی و استورهی سراسر دنیا به صورت صوتی و جذاب برای شما روایت میشه. کانال تلگرامی هزار افسان سفری به دنیای خیال و رویم سفری به دنیای خیال و رویم